Oh, خوشش کنم دیگه. نجا کوچولو می‌سیدی بونی ما خوابم میاد تو صبح هم نیه بابا یادت نیست بگام بخوابو مسو بی‌میلی همین هوا تو صبح دهن موای من چیکار کنم دیگه بابا پاشید پاشید یه ساعت دیگه سال تحویل کلی کار داریم من چیه تو سبزمم وزوز میکاپه داشتم ای نکنه پاشید منه از ساعت 6 صبح دنبال گوشیم میگردم شما هم که مثل جنازه بیهوش بودین ها بچه‌ها سر صبح بکنیم این پنج دقیقه بخوابو تو خدا آها اصلا میخوان برنامه رو بیخیال دیگه به میچن چند ساعت دیگر رو نامتون یا منم هستم 5 نقه دیگه بیشترم نفرشید میاد یعنی <تصفح> چی باست. دوباره دارین میخوابین مگه برنامه نداریم بابا سر از ذهنیا اخه بابا بچه میخواد اینا رو ببینید ایی روز رسی ای وای گفتم دیر میشه مگه قرار نبود سر سال تعریف بچو خوبی هنم از آخ سا آخه که رسید پشیم پشیم پاش پشیم آره، پاش پشیم پشیم دیر شد من میرم زودتر بودو بیا امراه به خودم رادیوتو بردار روشدش کرا رو به بگذار هفتی رو بچین فصل بهاره نوروز که میاد شادی میاره امراه به خودم خواب نمونی باز برنامه ها داره میشه آقاست سول میدونم یه سول خوبه تو رادیو بکوبه با ما برنامه داری. لحظه ها رو با هم به نو با رویا ملکی و من سعید هابیل تا دو ساعت آینده یعنی از امسال تا سال بعد با ویژه برنامه ناروزی رادیو فردا در خدمت شما هستیم. همین که بتونیم توی این یک ساعت این ورسال و همینطور اون یک ساعت اون ورسال تاری کنیم که حال و احوال سال بعدمون بهتر کوکتر و شادتر از امسالمون باشه به به ببین کیا اینجا آره ماشاءالله خوب شد و خلقتی استدیه برنامه نوروزی رادیو فردا ها. آره روی امروز تو استودیو مهرسا سارا الی سامی و شهرام هم مهمون یا در واقع صابخونه ویژه برنامه نوروزی ما هستن سلام علیک دیگه از هم پاشودین نوروز رو برداریم که منم سلام می کنم خوش آمد میگم بهتون البته من ساعت 6 ساعتی آره آره اصلا شاعر میگه نوروز که میاد یک پ. هانی ما رو به تو میخالم. ما اومدی شاعر خوشتم خلاص اینکه اما جای جلال سعیدی و چراغین زند نویسنده برنامه خالیه اون وقت متوجه میشین که من امروز این برنامه چقدر غریب و تنهام آخه چند نفر یه نفر اوه چا شما ماشاءالله ارتشی ی نفری غریب نمیوف نیست سعی بدم که این صدای فرشید منافی بود که شنیدید ولی فرشید تهیه کننده برنامه نوروزی رادیو فرداست و در پشت صحنه صدای ما رو از رادیو فردا با ویژه برنامه نوروزی میشنوید با ما باشید تا ساعت 9 صبح En şirin en gözün asıllara gelip Heiye elelimde komşalar gelip Noruz bayrramımız mübarek olsun. Heiye edelimde bolcalara gelip Noruz bayrramımız mübarek olsun. Mübarek olsun mübarek olsun. Nuruz bayrramınız mübarek, mübarek, mübarek olsun. Mübarek olsun mübarek olsun. Biz bayramınız mübarek olsun. یه حتما همه یه صفر هفتین ها پهنه و شنونده های ما هم پاش آره دیگه البته اونایی رو میگی که دوست داشتن سال تحویل و خیلی تحویل بگیرن و صبح زود پاش شدن البته یه دماستان که خوابن همین. نه تنبلا، آخه موقع سالتایید کی میخوابه؟ روی نگران نباشه قد سر و صدا میکنیم که بیدار شن. آره حتما، اما ما هم اینجا توی استدیو صفره هفت داریم. بله، چه سفره هفت هم داریم. فقط از خدا پنهون نیست از شما چه پنهون؟ سنجد نداشتیم اینجا. یعنی که از سامی عزیز خواهش کردیم موقتا بشینه کنار سفره در نقش سینه هفتم. خوبی سامی؟ سی بهتر از این نمیشم. کنار آجیلا و شیوینیا بعد نگذره سامی؟ آخی، گناه داره. در تو بوده بشینی پای این صفه آخه بعضی میگن صفه هفتین در از صفه هفشین بوده جدی؟ ساین پاشو ببین اینجا من بیام اونجا بشینم پاشو پاشو نانجی که الان که نمیشه اونجوری باید کل سفره رو عوض کنیم بکنیمش حفشین جریان این سفره حفشین چیه رویا جدی شوخی چیه نه بابا شوخی نمی‌کنم خیلی خیلی قدیمی ما واقعا موقع سال تحویل سفره حفشین مینداختن شینهای سفره توی یه شعر اومده چیه شعرش جالب شد قضیه آره میگه روز نوروز در زمان کیان می نهادند <صح onun ideas> نهادن مردم ایران شحت و شیر و شراب و شکر ناب شمع و شمشاد و شای اندر بح, بح جالب حالا این که تو شهر بود چیه همون سایه نه بابا شایه یعنی نیوه <laughs> چه بامزه بعد ببخشید چی شد که حفشین شد حفسین شانس بعد ما رو ببینم اینم ظاهرم میگن بعد از اسلام چون شراب حرام بوده ایرانیا به جای شراب سرکه میذاشتن سر سفره عید و اینجوری شد که حفشین کلاً تبدیل شد به حفسین خب پس سال دیگه سفره حفشین هم می‌ندازیم کنار حفسین همه چیزاش هم اینجا دمه دستره چی بود شکر شیر شراب شکر شم شمشات شای که همون میوسته ان که سال دیگه دو سفره‌ای بشیم آمنم برام بغل دست سامی بشینن این دو ساعت هی از خودم پذیرایی کنم داری تارم و اما خدا می با سامی باش سینه هفتمه ما تو. بده بمان خودی انقد نزن این کلمه‌بازم بده کم فروشی خیلی بده آقا دادی تو پنج سو سر به سرم خیلی نزار آقا جنم بده نیا بده رسید خیلی زیاد ثمنو هر چی بگذاریم سفر سفر تو اعیام نوروز خوشت داره. بله سفر کردن تو ایام نوروز دو تا خوشت داره. یکیش نیست که از شهر بعضی دید و داش خلاص میشه. ای رویا جان دیده بازی داره نوروزی شهر نداره که خیلی هم خوبه. بله دیدن آم و خاله و پدر بزرگ و مادر بازگو فامیلی درجه یک و دو حتی بگو درجه سیم همیشه خوبه. ولی آخر فامیلی درجه هفتی که روی کاغذ نیم ساعت باید فلورچات بکشید تا بتونی بفهمی که از چه تاریخ با تو نسبت داره وقتی از اون برای ایران با هفت سر عائله به قصد اقامت 13 روزه میکوبه میاد روز اول اج زنگ خونه رو میزنه چی باید بهش گفت ها اونجوری بخیر حساب بکنی فرمایش تو کاملا صحیحه دیدم که میگم آه. حالا این یه حس مسافرت توی عید یه حس دیگه هم مسافرت تو ایام اج جاره که خب تعطیلات که عید نری سفر کی بری من میگم بهترین روش برای سفر قطاره مهمترین نکتهشم اینه که میشه خابی توش میخابی پا میشی میخابی پا میشی میخابی پا تو هم که همش بخواب بس ها پیمارو چی میگیم میشین روی صندلی قبل از اینکه خوابت ببره روی رسیدی ببین هواپیما قیمت بریتیش زیاده خب چه کاری آدم بشونه توی وسیله ای که ممکنه حالا یه زمانی هم سقوط کنه غفتیز آمار میگه ایمنی سفر با هواپیما از ایمنی سفر با قطار خیلی بیشتره آمار ما. بگه خب چیزی که من تو خبرها میشتوام و موهای تنم سیخ میشه سقوط هواپیماست نه تصادف قطار قطار تصادف کنه شانس زنده موندن داری ولی هواپیما سقوط کنه دوازده ماه هم من بیان کمکت باز میمیری وای کاری نداری نفوس بد نزن اینو میخواستم بگم که ما امروز یه هواپیمایی هم داریم توی برنامه تا آخر برنامه چندباری باری سراغش مسافرای این هواپیما ظاهرا مسافرای های حالا اینکه این مسافر ها کی و کجا میرن و اینا خودتون میفهمیم بریم الان یه سریع بزنیم. ببینیم چه خبرتون این هواپیما بریم بخش اولو بشتیم مسافرین محترم پرواز پاکویا لطفا در هنگام تیکا پاهای خود را چین زده و با بغد دستیتان کاری نداشته باشید و کمی آرامتر به سندلی ها تکیه دهی که نشکنن در زم، در دستشویی سیگار کشیدن اکیدن ممنوع زمنا مسافرین محترم توجه داشته باشید در هنگام پرواز انجام حرکات موضوع در زمان سا تحویر ممنوع می باشد با تشکر میگم آقا بعد از اون همه سفر به کربلا و سوریه من هنوز شک دارم که این سفر سال ما کار درستی باشه مهد خانو چرا انقدر سخت میگیری شما؟ البته یادتی که بچهای پایگاه همه فکر میکنن ما امسال عید داریم میریم مناطق جنگی ها یادت نره یه وقت که بدی میگم اون رفیقات که رفته بودن این جایی که ما داریم میریم مجردی رفته بودن یا با زناشون رفته بودن آقا نه فکر کنم قرار بود برن سوریه مشاوره بدن ولی سر رای سرم رفته بودن اینجا میگم بار منویش خیلی بالا بود ما اد والله من هر کی رو تو این هواپیما میبینم مشکل داره بیا اون یکی که بعد هجاب رو سری شفتده رو شونه هاش اون دوتا پسرم خیلی چشمای ای دارن آهازه میخوای از خانوم مهمان دار بپرسم تا آسمون حکم همه به معروف و نهی از من چیه؟ اون مهمان داره؟ اون که خودش همش داره با این مردا بگو بخن میکنه لیدیزا جنتلمن کاپیتان غرزنتاش هستم آدر خدمتی شما در حالی حاضر در ارتفاق خیلی زیادی در حال پرواز کمتر از دو ساعت دیگه به پاکویا میرسیم درجه حرارت در پاکویا همکنون سی و درجه بالای صفره وای مادر خانم کافتان پرواز داره حرف میزنه مگه مگی ندیده بودی آقا سیه مثل همون بی سیم حاجی تو پای و خانواد محترم دون آرزومنده ما خواستم یه نکته هم اشاره کنم اونم این که این بطری های آبا عزیز جان دور نندازیم چون اگه خدا بخواد و سانه هیروی روی نده داد زنده به مقصد برسیم توبالتا در کشوری مقصد برانگیان. یعنی از آب خبری نیست همین بطری ها خیلی به کار دون میادش بعدش هم دم عیدی خوب نی دوباره هزینه کنی ها یک دیگه بخرین همینار بذارین تو جیبادون پرواز خوبی داشته باشیم استخبر میگم ماید خانم شنیدی برادر کاپیتان چی گفت؟ اون باچی نوشابه خانواده رو چی کار کردیم؟ آقا خدا از سر تخصیلات من بگذره دور انداختمش فکر میکنین اونجا بتونیم یه نوشابه حلال پیدا کنیم حتما میشه نگران نباشید شما. شما من این مسئله رو حل میکنم آقا سید دیدیش؟ گیافشو دیدی؟ اینا خجالت نمیکشن؟ من قول میدم به رفت دستش کشف احجاب کنم باشه باش آقا سید من برم تو دستش اینو معروفش کن باشو مائد خانوم کوتا بیا دیگه ما که نمیدونیم حکم بره به معروف تو ارتفاع چیه آقا سه تکلیف از این حرفا بر نمیداره برو کنار برو کنار ببینم تا من بیام با این دختر مهمانداره داره حرف نزنی ها اینم مشکل داره باشه باشه اگه به کمک احتیاج داشتی پس یه بری چیزی به رو بیام کمکت نیسته آقا شما زحمت نکش من خودم از پسش پسس نخوری مااد خو نفشه گول بیرون با موبا یاد ببرتی اهد گفتی بی وقتی بهار هایم کهور باخنده گوارن سبزان سرغااست تو و بفشه پسسته بهار بهمو بیا مییل ب بسته زنده اذیت بهونگی تو مگرقول و قراره. یه ناز بکون بیا میو وقت بهاره از یاد ببر گیسو مگر بونه و گلاره یه ناز بکون بیا میو وقت بهاره اخه غیر زفا چی مانه درم تر دقم نرم می نازنیم نزدانه درم تر دقم نرم می نازنیم نزدانه قاست بوبو بنفشه بس بهار بهمو بیامید بوبو ستزن به از یاد ببلدی تو مگر قول و قراره دین نزد کن بر وقت بهاره از یاد ببلدی تو مگر قول و قراره دین نزد کن بیامی بربخت بهاره دنیا به جان مانه غیر از وفا چی مانه دنیا به جان مانه اخر از وفا چی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 من نگرانم بعد از تحویل سال کسی برنامه رو گوش ندیدید. نه بابا چرا نفوس بعد می‌زنی؟ آخه بعد از تحویل سال همه مشغول روبوسی و زنگ زدن به هم و تبریک گفتن و تبریک شنفتن میشن دیگه کسی حواسش به نیست. شاید ولی شاید هم اینقدر جذب ویژه برنامه نوروزی ما شده باشن تا موقع که بعد از تحویل سال سرین ماچوموچاشونا با هم بکنن تبریکشون بگن که بتونم بقیه برنامه رو با ما باشن. ولی شاید یه چیز دیگه هم هست. خب بابا دیگه چی؟ آخه همین الان واسه خیلیه صبح خیلی زوده. فکر نمی‌کنم یه جورایی وقت کل پاچه خوردن باشه نه وقت رادیو گوش کردن من که میگم بعد به دلت را نده مطمئن باشه کل پاچه ایم مگه واقعا کل پاچه ای باشه یه دون رادیو دو ماجه قدیمی توش پیدا میشه که برنامه ما پخش کنه <تصفح> جی بگم امیدوارم همین جوری که میگی باشه آقا هستانون شقدر میشه میشه چه charm بغل دو تا بنابوش یه چاشو دو تا پوچه آره آره باستانم من بینا نونتیو میگفت موندن مغزم داشتین آره داشتم ولی مغزمونو خوردین صدای رادیو بابا چقدر خوب برنامه میگفتید ها شب میکردم رادیو اینو ما خوندو چه نیست رادیو فرداست بیا بابا آسا خاموشش کردم وسلای داری به خودش شما همشون با هم تو یک کاسه یعنی آسشون کی گذاشت؟ آره دیگه بابا شما من چجوری سر را گرم میکنن هفت است و من مخ مردمو می خوام. این میگه سالگر بزرگ ذارش، شنیدی که میگه دیر ذارش. سر اردو گرم می مردم یادش می برندون شب ندارم بخورم. آه حالا شب ای دی بعد می یه چیزی پخش می مردم یاده بد وقتی آشون کاتر بیوفت. این خوبه آمد. وسط پخت و سواد می کشونم بیرون وسط جایی که بگم خوش باشی کلا دیاده بره وسوزه. حالا بعدی می کنم یا نه؟ نه کنه وسوزه داش. میدونی چند تا تو کله ای توه پس به من رسیدی شما بیمی این منو به کشونی جلو در آره فرمایشت صحیحه ولی اگه همیجو که من اینجا باستادم بالا سر دیگه دارم سرویس میدم مشتری را میدازم بیاییم مثل این رادیو و سم حرفای خوشمزه بزن اینو چند توستم سرم گرد میشه چرا چنم آقا اه. من چی میگم شما چی میگی چرا شدین سالونو خ ببینیم هلی داداش اینا همه اش سپا به حکومته مردم به جایی که با فشاری که روشونت بزنن دیگ و بتره کنن ریز ریز پایین برنامه ها پیش میخندن فشارشون کم میشه اینو شابنداشی به امورتی چلوه هشت بله بفرماینی خدیش دست شما در, در کنم قابلی هم نداشت اسخار چهار تا چایی ببر بستم میزه دو آقا به سلامت سلامت عجب مشتری سیریشی بود ولی یا مغزم رو خورد ده رو یه این یارو یه چه مغزم خورده بود ای بابا مغزش چرا اصاب نکفت داداش آی معترم مشتی یه مغزم داشتی الو اسخر اسخر به پرده بدنی یارو رو بگیر کود مغزشو نداده به نشینی We'll be right مراسم نوروزی ایران از کی می این شکل برگزار می شده؟ والا نمی دونم اما قدمت نوروز احتمالا به خیلی سالای پیش بر می چه می دونم؟ شاید سه هزار سال، چهار هزار سال، شاید هم در آره منم راجب نوروزی مختصر تحقیقاتی کردم بد نیست و قبل از سفر سال کمیان در مورد تاریخچه نوروز با هم صحبت کنیم ها چی میگی سعید خیلی هم خوبه ولی خب یه مشکلی هست چه مشکلی مشکل اینه که در مورد تاریخچه نوروز هم مثل خیلی چیزایی دیگه هیچ اتفاق نظری بین مورخین وجود نداره یعنی چی یعنی یه عده میگن از دوران مادها این رسو ایران بوده یه عده میگن عید نوروز از بین النهرین اومده یه میگن یه جشن مذهبی و بوده در ابتدا اینه که خاصگاه روشن نیست ولی یه چیز مشخصه اونم اینه که از زمان هخامنشیان به این طرف جشنوی آغاز بهار خیلی جدی گرفته شده. پادشاهای هخامنشی با برگزاری مراسم رسمی و گاهن با شکوه و حسابی تحلیل گرفتن و وارد فرهنگ مردم کردنش. <تصفيق> بازم دم هخامنشیان پادشاهانشون گرم وگرن عید و تعطیلات عید هم نداشتیم البته ما الانم تعطیلات عید نداریم. خب حالا ما نداریم بقیه که دارن. باشه چه با تعطیلات چه بی تعطیلات دمشون گرم هست. کم بودیه این صدای موسیقی چیز چرا به میگذارم در آنگاه خود اوزیده به خواهده من صد بار به تو فر بودم که با اسم من در جمشوخی نکنه یا مخصطره خزانه ما در زبان حیات بابرکت هیچ هیچگاه از لحظه بود مشکلی نداشت اینا شایهاتی بود که درست کرده بودم زخم شهانه دور یکی بگوید ها رو که نداند برای اونی تقرید بود که به مرگ و هم ماریا هم ماریات بودی کم بودی یک جا ماریات گرفتم که گرفتم از مردم خودم میگرفتم بسه تا که سراغ و کشورهای دوست و برادر نمیرفتم که می کنم یک جوری میگویی که گال پنجو آلشگر سوادم و پیاده آفاده رز میداشتی و نرفتی <تص> حالا نگفتی جماعت آودند اینجا چه کنند آرامش عبدی ما را جریه یا نصم شاده است که برسر قبول درگ و دشتگاه نخواد نیاید و فاتحه میخوانند آش چش خلاص همین دیگه این آخر چه موسیقی است؟ اگر به جای این فاطه خن درها صدای صندوق ساخن جییشان رو اندکی کم در آرامش شادی بیشتری نظدیک بهلو پرپدون ما در این ساعت نزدیک چیز سال تمیل میشه اسمش رادیاستیم که میگویی و بخشره یک وقت های با خود تت میکنن کاش از همان اولین نرووز آن چشه ولی اعلاق نفر بوده بودیم با همما آرامش روح یا رووای داشتیم هم مردم منقدر به تکپو نمیافتادم تا همقد این طرها بر می دختران جوان و آمدن. چشم ای ما می آمدن و دور از و منزل این مقبره امامونی شستر ممکن دیدم اون همچنین باز یادش فقط بالای این 80 90 ساله ها می, می آخ گفتی یه کاش رفته بودم که با خطا میخی بر مقبره ها نگاه شده بود لطفاً بالای 80 90 سال بالای 75 کیلو نشینن رو مقبره من. مرسی. <تصفح> حالا میخواد دنESHINAN هاندی هایان دنESHINAN ولی صدای یه جالبی موسیقی کم کم بی سرسام هایان سر خونه نمادو مه. سیاودو سنسن مشه. نیکبادی ارچیدر مشه. هیش باشید کی خارسه. ماو دی چه موزیکی یعنی واقعا ممکنه کسی از یه چیزی بعدش بیا سعید من سارا خوری؟ میگم قبل سال تحبیل آدم خیلی بجه برای سلامتی خیلی خوبه شوگونم داره سعید باید خیلی بده موزیکی داره میری خیلی ای بابا. ایفول میل میشه ای باقا چهت پالا که احسار میتونی منم چی شد؟ تمام شدیم هاین تمام شد قسمت نبوده آخی سعی دیدی چقدر بده فکرم وسط مهمونی به زور بلندت میکنن بعد تا بلند میشی غیره اول تمام نشده موزیک تمام میشه آره والا همین الان که خب خوب رو تجربه کردم عب نداره حالا کسی ندی. نج ها و بازم باززن رسیده مبارکه بابارک نید ایید و میده اطر کله بنفشه بیچیده تو هواممون ایید اومده که باشه میون خون آمون عید و که باشه مهمون خون آمون. مد از راغ دور با زنبقاره تازه به فصل دی که داره یه سال نو می‌سازه با زنبسید از راغ و غار مخربونی تفسین رو براکن با سفره ایرانی سبز و سیر و سرکه سماغ و سیب و ماهی به سوی سال دیگه میشیم دوباره راقی زمستونو بدر کرد دوباره حاجی فیروز بازم رسیده از راق بخار و ایده نوروز جبونه و بر خاستگی رو تکون دیم سرخونه ایدیم سال ما سبت سبت گل یا شکوفه روش درخت جره بار و بازم بهار رسید مبارک مبارک نوید امید و میده عطر گله بنفشه پیچیده تو هوامون اید اومده که باشه میمون خونه هامون اید اومده که باشه میمون خونه هامون زيبو سیر و سرکه سماق و سیب و ماهی به سوی سال دیگه میشیم دوباره راهی زمستونو فدر کرد دوباره حاجی فیروز بازم رسیده از راه بهار و عید نوروز مبارخ خستگی رو بکوبیم از تو خونه این سال انسان ما سبد سبد گل یا عالمش توفه خوشاغه درخت‌هاس انجیرا ها رو با گل بازم به بار رسیده مبارکه مبارک مبارک نوید عید میده عطر گل و نقش پیچیده تو هوامون عید اومده که باشی مهمون خونه غامون پید اومده که باشه مهمون خونه غامون اما های عزیزمون هم نوروز رو به شیوه خودشون جشن میگیرن یعنی اونا به جای هفت هفت میوه دارن یعنی توی سفره هاشون مخلوطی از هفت تا میوه خشکو میذارن که بهش سالاد میوه میگن چه باحال حالا چی میذارن کشمش هست سنجت هست که ما هم داریم برگه آلو و برگه زردآلو و همون قیسی خودمون رو پسته و فندق و گردو هم میذارن چه میشه یه جور آجيل مخلوطه آره البته افغانها سمنوهای خیلی خوبی هم برای نوروز یه کلوچه مخصوصی هم دارن که فقط ایام نوروز پخته میشه بهش میگن کلوچه نوروزی خیلی هم خوب کاش منم یه ذره سمنو داشتم برای سفره هفت سینم سال نو افغانهای عزیز هم هر جا که هستن مبارک باشه و حالا جپ مهرسا رو بشنویم با همکاران بخش افغان جشن نوروز در افغانستان خوشبختانه امسال هم مثل هر سال دیگه برگزار میشه مرکز اصلی جشن نوروز در شهر مزار شریف استان یا ولایت بلخ است که تدابیر امنیتی هم خیلی شدید است و انتظار میره هزاران نفر اونجا جمع و جشن نوروز تجلیل بکنن همزمان در کابل و در دیگر ولایت های افغانستان هم برنامهای خیلی خاصی وجود داره غذاهایی که میپزن غذاهای خاص نوروزی است. ما هفت میوه داریم سبزی چلو داریم که با اسفناچ و برنج درست میشه و همسالش قزای خاص دیگه برنامه های بازی و ساعتیای خاص میانه ها و نوجوان‌ها هست که در کوچه و بازار برگزار میشه از جمله مسابقات ورزشی با نام داریم پهلوانی هست و نمایش های ورزشی متفاوت سنتی و فرهنگی یکی از ورزش‌هایی که نمایش داده میشه در افغانستان در ورزش های ورزش‌های هست که در ایران هم خیلی رایج است موقت به چه بودی خاطر خاصی یا نوروز داری؟ بله نوروز برای ما بهترین روزهای زندگی مومه بود ما از طرف دوستا و بزرگا نوروزی دریافت کردیم. روزی در اصل در پول کم بود که خاطر خوش ساختن کودکا بشن دادم می شد و همزمان از هر جای دیگه برای, برای ما سمنک می رسید که فکر میکنم همون غذایی که در ایران بهش سمنو می و همزمان غذایی بسا خواست دیگه بختم می شد من خودم شخصا هفت میوه رو خیلی دوست دارم هفت میوه از هفت نوه میوه خشک. اومده میشه که این یک هفته پیش یا تا این میوه در به شکل خاصش در آب گذاشته میشه و آبش مثل یک شربت تبدیل میشه و این آب با همون های خاصی که درش داره هست برای ما میرسه ما شخصا خیلی دوست داشتیم در کودکی هفت میوه و این هم خیلی ذوق زده هستم که برامو هفت میوه بخورم پس هنوز فرصت داریم. سعید ببین یه سری مسائل در مورد عید نوروز هست که واقعا شاید خیلی پیش پا افتاده به نظر بیاد اما واقعا مهمه. به نظر من باید قبل از سال تحویل تقریباش مشخص کنیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه موقع سال تحویل یا موقع عید دیدنی چند مور باید صورت همدیگه رو ببوسیم. ببین استانداردش تو جایی که میدونم سه تا است دیگه یکی چپ یکی یکی دیگه هم چپ. <تصفيق> اون وقت این استاندارد رو خود موسسه استاندارد تعریف کرد. ببین دیگه عرف رو یا جان مثلا توی خارج از ایران بیشتر مواقع دو تاییه. گاهی هم یک ایه ولی خب یده به یاد ایران تا رو به جا میارن ولی سعید من آدم سراخ داشتم که سه تا ماچش کردم ولی هی طرف هی اینجوری شد چپ و راست میاره جلو تا پنج تا ام رفت بعد دیگه من خودم رو کشیدم اصلا ترسیدم کی بوده هر کی بوده خیلی خاطرتون می‌پست نه نه دیدی ها موقع بوسیدن یه جمله یو میخوام بگن بعد با هر بخش جمله‌شون یه ماچ می‌کنن مثلا اینجوری تولدت رک یا مثلا میگن عید شما رک اینجوری تقسیم میکنن جمله رو بین بوستاشون آره دیگه اینجوری هم هست حالا پنج تایی که گفتی چی میخواست بهت بگه اینقدر کشش دادت من میخواسته نمیدونم بگه بیدونم صد سال به این سال دیگه به اون های نرسیده دیگه خدا الان دقیقا یادم نیست اعتمالا یه چیزی تو همه مایا بوده بعد یه ساله دیگه بازم در مورد بوسته آره خب بپرساره مثلا که من تخصص بوس و ماچ و این حرفا میزنم ببین این بوس های ای دقیقاً باید چه باشه یه جدی هستن رو هوا ماچ میکنن یه جدی هم هستن حموچین لبا رو میندازن مثل بادکش سر و صورت آدمو داغون میکنه الان اون <تص> پنج تایی که تعریف کردی بادکشی بود یا رو هوا بود یعنی اشوک رو خدا رو هوا بود ولی میخوام ببینم واقعا درستش کدومه ببین خب کسی که ماتیک زده باشه چاره ای نداره بعد رو هوا ماچ کنه وگرنه خب کله یارو رو رنگامیزی میکنه دیگه ولی واسه آقایون و کسایی که ماتیک نمیزنن به نظر من باید لاوا همچنین درگیر باشه. بالاخره فلسفه بوسیدن همینه دیگه. هوا رو که نمیخوای ببوسی که طرفو بادماش کنی. تازه یه شعری هم هست که میگه بوسه مگر چیست؟ فشار دو لب. اینکه که گناه نیست چه روز و چه شب. دست شما درد نکنه. دیگه خیلی منکراتیش نکنی. سوالی نداری؟ نه نه نه نه دیگه. رودرواسی نکنه. الان دایره المعارف ما چو بوس اینجا جلاد نشسته. بورتو جلاد نکنی. بابا سوال ندارم دیگه. در مورد بوسهای ای جوابمو گرفتم. تو خدا. در این طرف. بیانی. ای بابا. هیچ‌بینی یکی از ضد حالای قماریی که میتونه به یادم وارد بشه اینه یعنی که موقع سال تحویل پیش یار و دلدار و خونه و خانواده‌اش نباشه بعد به جای سر کار باشه. آخ, آخ آخ به خدا این دیگه خیلی ضد حاله. خیلی از کسایی که به خصوص مشاغل امنیتی و درمانی و امدادی کار میکنن این یکی از های شغلیشونه که موقع که ما می‌گیم عشقاهال اونا سر کارن. با ایشان نمی‌شه که بریم سراغشون یه سری بزنیم یه سال نو مبارکی بکنیم برگردیم؟ آره چرا نه بزن بریم. دسته اول اتاق عملیا. ها پرسومن اتاق عملیه وقتایی در چنین ایامی کارشون بیشتر هم میشه نه اینکه ما تو جاده هامون سوانه و حوادث بیداد میکنه این بنده خدا ها یه وقتایی اصلا موقع سال تحویلم که میرسه هنوز دستشون تو دل و روده هست. یه چیزی تو این مایه لطفا. پنس دکتر صبحانی اون آاپدیس رو یه دقیقه من یه شکاف اینجا ازم بله دکتر گرفتمش خیالتون راحت یابی پیشونی پیشونی مریسه های دکتر ناخیه پیشونی منو پاک کنید دارم کردم و ببخشید چله دکتر صبحانی گیراه کلارشت تو چه کردی ای میری اونجا؟ دکتر تمامومه فقط نازوکاریش مینده چه صافت کاری شد شد نه دکتر تمیز درشا بردیم حالا تموم شد تش کتون ببینی ایلا رو نمیگم دکتر کابت و ببین دوچار صندرو پلاستیک مراجی که پیش رونده بیش بقال ای ما دکتر منطالا یه صدر سین پلاستیک مراجژی پیش رونده رو از نزدیک ندیده بودم پیش باش سلفی بگیره پرستار لطفا پیشونی پیشونی شما؟ نه پیشونی دکتر صبحانه خیلی عق بود قابل توجه همه فل درمانی بیمارستان قابل توجه فل درمان بیمارستان آخواذ سال جاری دهی سوال تعریف شد. دکتر چیکار کار کرد؟ کار را اصلی کرد. بده ماچو برگلیو. مبارک شد. ما خیلی مبارک باشه شما که تازه می‌خوریم. ما ما. با خانگی خوشحال بیشتر می‌شیم. خانگی. خانه دوی شما مبارک باشه. ما. خودمیارم. خودمیارم. خودمیارم. خودمیارم. وای مم... مم... خود ایمان بابرم نمیشه اینشالله که سال خیلی خوبی برای همه باشه من هیچ فکر نمیکردم کردم کناریه سندرمه سینه پلاستیکی مراجعی که پیش رونده بیش فعال سالو نکنم باباره چه باشه؟ میگم دکتر مریض رو چی کار کنی؟ سطح بیهوشیش رو بیارید پایین کم بهوش بیاد سال ساله رو بهش تبریک بگیم بعد جراحی رو ادامه بگیم وای چقدر زیبا داره به آه... بچه ها با شمارش من همه با هم سه دو یک سال نوی شما مریض عزیز مبارک باشه تونس غمهای منی تاب و تمامی بالاتر از آنی که نگویم به چه بامی نوروز روز منی ده منی شادی جایی محبوب منی عشق منی روح و ای سربرانم تو, تو مرا صبر و سود ای سودوس تو مرا دور نداری جم می‌د همت‌کار سرم پای گذاری هر چند کنی ناز و بوی چم نشو منی ده منی شادی اجابی محبوب منی عشق منی روح و به صفایی که خود اصل صفایی دردم دی وفایی نه که خود عین وفایی من عاشق دردم تو مرا زرد و بلاوی من عاشق دردم تو مرا زرد و بلا من کوشته محرم تو تبی و دوای من خوش مهرم تو تپدی تو دوایی نوروز منی که من محبوب منی عشق منی روح و روایی در راه ارادت تو مریدی تو مرادی رسم محبت خطوطی تو خطوتی تو سوایی تو این دقایق قبل از تحویل شدن سال تو این لحظه هایی که بهار این پا و اون پا میکنه تا بیاد و یه بار دیگه مهمونمون باشه تو این ثانیه هایی که یه سال داره نفس های آخر رو میکشه و سال نو داره میاد که 365 روز و شب دیگر رو به زندگی ما اضافه میکنه آدمای زیادی هم هستن که شاید این لحظه ها براشون لحظه های شیرینی نباشن آدم که شاید تو این لحظات روی تخت بیمارستان دارن با یه بیماری دست و پنجه نر می کنن. کسایی که توی پست نگهبانی وسط بر رو بیابون غریب و تنها هیچ دلخوشی ندارن جز اینکه عزیزی جایی به یادشونه کسایی که الان دور از همه داشته ها و وابستگی هاشون توی چهار دیواری زندون ها و ندامتگاه ها دارن با مرور اشتباهات گذشته تاوان سخت دیروز رو میدن. یا حتی مردا و زنای بزرگی که در بندن و تاوان اندیشه ها و آرمان هاشون اونها رو از آزادی دور کرده خیلی از ما تو این لحظات دلتنگ کسایی هستیم که اگر بودن گرمای وجودشون برامون غنیمت بود اما جبر زندگی اونها رو به مهمونی خاک برده خیلی الان بدون دلیل تنها هستند در حالی که نباید باشن و خیلی دیگه که توی این لحظات حسرت چیزهایی رو میخورن که فقط مختص این دقای هم. با همه این حرفا کارش نمیشه کرد بهار پشت درهاست و چیزی نمونده که ما میزبانش بشیم پس بیایید هممون همه این حسرتها غمها دلتنگیها و قصه‌ها رو برای لحظاتی هم که شده فراموش کنیم چون به قول شاعر بهار زامن سبز طلوع است اگر ما به اندیشه پاییز قناعت نکنیم و اگر سبز شدن آخرین نقطه پرواز کبوتر نشبر بس باد بهار و صدایی که دیگه از همین نزدیکی ها به گوش میرسه صدای پای بهار صدا همون صدا بود صدای شاخه هایی شها بود بهار بهار چسم آشنایی صدات میاد اما خودت کجایی؟ باب با کنیم پنجره ها یا نه تازه کنیم خاطره ها یا یاد نه باب با کنیم پنجره ها رو یا نه تازه کنیم خاطره هارو یا نه بهار اومد لباسمو تنم کرد تازه تر از فصلش کفتنم کرد بهار اومد با یه بهر جبونه عیده آورد از تو کوچه تو خونه حیات مای غربی بخچه مای گلدون خونه ما همیشه منتظر یه مهمون بهار بهار یه مهمون قدیمی یه آشنای ساده و سمیمی یه آشنا که مثل قصه ها بود خواب و خیال همه بچه ها بود آخ که چه زود. الا <متلا> ای ایدیامون وقتی شکست وهاشی شکست دلامون آخ که چه زود ای ایدیامون وقتی شکست وهاشی کس دلام سعید علام خانی مادامون نشستم پای سفر هفتم آره فقط جای اونا پیش ما خالیه یا جای ما پیش اونا؟ ای بابا فاسق همگی ای فوز نگیر ایده بیا برای همه دعا کنیم. بهترین کار ممکن. ان شاء امسال سال شادی باشه، خبرهای خوب از ایران بشنویم. فاصله ها کمتر بشه، بدیا، تاریکی ها از سال دیگه تبدیل به خوبی ها و سفیدی ها و قشنگی ها بشه. دعا کنیم سفره هیچ خونه ای بدون روزی نمونه. پدرها همیشه جلوی خونه بوده هاشون سربلند بلند بشن. البته به نظر من پدرها همیشه سر بلندنان. البته. هیچکس اسیر هیچ بندی نباشه، چه زندون درونش، چه زندون بیرون. اصلا سعید دلم میخواد دعا کنیم هیچ کسی مد... ریز نباشه اصلا غم نداشته باشن دیگه داریم خیلی غم نیاکی میشون ما ملش کن ملش کن اصلا همه اینا که ما گفتیم قبلا مای خونده خدا ما ازش بخور برآم و سرنگی تمام بذار برآم و سرنگی تمام بذار راواي بان است باشه هیچکي قريب نباشه سوريت و شكلي هیچکس مردم فريب نباشه مردم فار ستیزه رو هیچ کی و رو بمیر نخونه جقده شومی نخونه جوده شومی تو اونیم رها شون اونا که توی بندند از بس نباشن اهل زندونارو خودش میدونه دوباره هر کسی آرزوی این باشه آرزوم نریزه او بر نریزه او فکراته توی که همراه مایی دست خواهرت، مادرت، پدرت، عشقت رو یا هر کسی رو که کنارت نشسته رو بگی. به هم لبخند بزنین برای هم آرزوهای خوب بکنین. هر کی ممکنه تو دلش یه غمی داشته باشه. بیاین توی این لحظه دلامون رو از هرچی غم و است خالی کنیم و با دلای صاف سالونو کنیم. راستی چقدر مونده به سال تحویل سعید؟ 20 ثانیه. دعا تو کردی؟ همین الان میخوام دعا کنم. باشه پس بیا با هم دعا کنیم. همون 5 تا همینجوری دیدی تلاشش رو بالا آره بهت که گفتم من متخصص ماچو موچه همون همون دو تا بسته اونم رو هوا باشه دیگه باش همون رو هوام بخیرام سال خوبی داشته باشی هرش شاد باشی بله تو هم سال خوبی داشته باشی از شادی و سلامتی گرد مهر تاب ناکیران زمین روز نو آمد و شد شادی برون زن در چمین. تو یزدان ای تو گردامنده و سپر. برترین نشکن براگم این زمان و این زمان صلح و آرامش از چهره مردم سرزمینم. دزدیده نخواهد شد تا بهار هست تا نوروز هست هرگاه که نوروز به ما سلام می کند نوری تازه به قلب ها می که نوروز یعنی تابش امید به هر جنبنده و باور شادی و باور امید باید باورهایمان من زنده تر شود با نگاه به بنفشه ها و سبز زاران چشم شسته شود چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید و اگر دیگر گونه بنگریم در میابیم و از تاریخ درس میگیریم که فرداها و پس من روزهای دیگری در پیدارد چرا که روزهای در پیش به ما خواهند گفت تلخیها ها و سیاهی ها ماندگار نیستند. قلبها و سینه ها را به بهار بسپاریم. چون بهار به ما خواهد آموخت درخشش طبیعت بعد از سرده زمستان به ما لبخند میزند. خورشید بهار به من به تو میگوید فردا از آن ماست از آن فرزندانمان، فروردین اولین زاد ماه بهار است و امروز روز نو نوروز. آمدن و تولد بهار و فروردین زیباتر و پرشعفتر نوید سربراوردن جوانه های شوق و امید در دلهای تک تک ما ایرانیان خواهد بود و خجسته تر خواهد بود اگر نیکوتر بنگریم نیکوتر اندیشه کنیم و نیکوتر بگوییم عشق را پاس بداریم تا نوروزمان با دوست داشتن آغازی نو را نویده آبزنید راه را هین که نگار میرسد مژده دهید باغ را رابوی بهار میرسد چاپ شده است آسمان قل است در جهان انبر و موشک میدمد سنجوغ یار میرسد رونق باغ میرسد چشم و چراغ میرسد قم به کناره میرود مه به کنار میرسد می تیر روانه میرود سوی نشانه میرود ما چه نشسته پس شهز شکا میرسد سید راه او این که نگار میرسد مجد دهید با راه بهار راه او این که نگار می‌بست مشق دهید راه دهید یا رون هداد از رو نور آفراس که از منظور است آسمان ایست در جهان انبار موس می دارد تندوگیار می در جهان می رسد مونده می, می رسد رو چراغ میرسد رسد, می رسد کناره می کنار می رسد Neša ne mira ne ne I uh -huh. خدای ایران زمین تو را به پاکی آفرینش و کائنات به جاودانگی کردار کورش بزرگ به نابی سخن شاهنشاه زبان و ادب پارسی فردوسی توسی به آرمانهای دور و دراز مردم و جوانان مهربان ایران دست دشمنان را از میهن اهورایمان کوتاه ساز و آزادی را نصیب ایران و ایرانیان کن جهان آفرینا به فرزندان راستین سرزمین ما در این بهار که امید بهار جاوید است تو داریم امید و کردار نیکو فرما تا شراره فروغ جاوید از این گذر و تاریخی سرفرازانه بر پهندشت ایران زمین و مردمان شوید دل و دلپاک آن بتابد نوروز بر شما هموطنان بر شما ایرانیان و بر تو ای ایران ای مرز پرگهر خوجسته و شاه باد ای ایران ای مرز رگهر ای خام كر سر چشمه هانب دور اس تو اندیشه بردان ایند مانیتوجادان ای دشمن من صدای ما رو از رادیو فردا و از شهر پراگ میشنوید با شما هستیم با ویژه برنامه نوروز 1395 خب تا یا مشغول روبوسی های مبارکی با بچه های من از فرصت استفاده میکنم و دوباره سال نورو به همهتون تبریک میگم امیدوارم هر جای ایران یا هر جای دنیا هستین شاد و سلامت باشین و حال این دقایق ابتدایی سال 95 تون خوب باشه راستی یه سورپرایزم براتون داریم همکار خوبمون محمد زرغامی یه مفصل با خانم گوگوش انجام داده که این مصاحبه رو به طور کامل میتونید از وبسایت رادیو فردا بشنوید اما الان دقایقی از این گفتگو رو به اتفاق میشنوید فاروق گوش سال 1394 روی صحنه حضور نداشتید ترجیح دادید که استراحت بکنید اما به هر حال آلبومی رو منتشر کردید کار جدید الان چی در دست دارید من ترانه خیلی قدیمی اجرا کرده بودم از کتابه مشما عزیز و هرالان سفراض که البته در قبل از انقلاب این پخش نشد کاری بود به نام حمزاد این کار رو شمایزاده بعد از انقلاب با خودش آورد امریکا. البته این کار با صدای دوست خوب سالها ندیدم که خیلی هم دلم براش تن شده رامش پخش شد. ولی حسن شمایزاده این کار رو زمانی که من ایران بودم در امریکا منتشر کرد با صدای من. با شعر چشم من با صدای داروش خب خیلی گل کرده بود و هنوز هم مردم خیلی دوستش دارن این کارو من از بابک امینی عزیز خواهش کردم برام یک ارنجمنت تازه و یکم متفاوت نوشت و ضبطش کردیم و ویدیو شد که فکر میکنم همین یکی دو روز آینده این یوش به وسیله پی ام سی منتشه باشه با عنوان ایدی خب یکی دوتا کار قدیمی هست که رفت کردم اجرای مجدد ولی هنوز با کارهای جدید یکم دارم کشتی میگیرم کلنجار میرین میرم بسید میدونین مردم با کارهای قدیم ماهی مقایسه میکنن و دلم نمیخواد که کاری رو ارائه بدیم و خدای نکرده اونی نباشه که مورد انتظار رو مرد خانم گوش از همه چی صحبت کردیم وقتی برمیگردید پشت سرتون و یه نگاهی میندازین به ایران سالهای سکوت رو سپری کردین بعد اومدیم بیرون و همچنان روی صحنه حضور دارین همچنان شنیده میشین اما آیا چیزی هست که در ایران جا گذاشته باشید و دوست داشته باشید که برگردین ایران خیلی صادقانه و دو مرتبه اون رو تجربه کنید یا اون چیز رو بردارید من عشق دلم اونجا جا گذاشتم اون نهر و محبتی که توی مردم بود به منتقل می شد این حساب بود این حسای غشنگ که البته من مشغول نوشتن کتاب زندگی من هستم در واقع نمی اعلام کنم که همه اینا رو خود خود بیادم بیاد تو این کتاب میگن چون قربون گوش احتمالاً گفتیین از رابطه‌تون با مردم ولی بعضی از دیدم کسایی که خیلی شما رو دوست دارن میکنن که وقتی ما مثلا کنسرت‌های خانم گوغوش می‌ریم فرصت نیستش که خانم گوغوش رو نزدیک بریم راهی من قلبونه همتون بدم به خدا قسم من از لحظه‌ای که وارد اون سالن کنسرت میشم تمام فکر و ذکرم و روی کار و اگر بخوام که کسانی که دوست دارن من دوست دارم ببینمشون اونا دوست دارن با من ملاقات داشته باشن اون پشت قرار بذارم وقت برنامه گرفته میشه و بعد از برنامه خدا میدونه که انقدر من انرژی روی صحنه مصرف میکنم که وقتی میان پایین دیگه جونی برای حتی نشستن ندارم یعنی منو واقعا ببخشن من یکی از آرزوام در سال جدید این هست که آرزو کنم شادی آزادی و کمی آرامش و کمی کمی کمی عشق توی مردم ایران نسبت به همدیگه به وجود بیاد برای اینکه اصابیت و ناخوشنودی از زندگیشون رو دورا دور شاهدم اما اما بارغه ای از یک،, یک نوری توی زندگی بچه ها دارم میبینم بچه های که میگم منظورم ملدون ایران و به خصوص جبه کلبه ها فکر هسارن باخچه ها فکره بحارن ماغمون ها فکره <مشتراک> بارن من به فکره قصه گفتن شب تو فکره راه نوره نوت و فکره و فکره خاش به فکره ابر دوره من به فکره دل من چه کردم جز گرگه گرگه کردم باقی قصه نیست من چه بودم کار من تقدیس آب ناله از دست سراب کار تو، اما قشنگ سخت را باعثیسایه. می بود دست سر رنگ می بود خندجسه واهدی بود من نشستم قصه گفتم خسته از گفتن تو بودی عاشق رستم تو بودی شاعر و روشن تو بودی من فقط از قصه گفتم برزن توش هستم همچنان کاپیتانی شما در حالی حاضر که به خاطری دست فرمونی خوبی این جانه پرواز همچنان به سمتی پاکو یا به خوبی پیش میره خواستم یه نکته یا یادآوری کنم اونم اینه که آقای اون عزیزی که میخوان ستی شل و رنکا جوراب ساخدار و کتونی استفاده کنن رنگی غرمه با گلایی بنفش و زمین زرد مود سلام ما هم زمین habe میکروفونو تو همون پاکویا آشنام هست ای خیلی ارزون و مناسبه نرید از جا دیگه بخرید سردون سرتون کلاه میذارن چی میگه بابا این کاپیتانه ببخشید ببخشیدامه این سندلیتون خیلی عقبه ها او. میشه کمی بدینش جلو خب آخه الان میخوان غذا بدن من این سینی ما با ازم جام پنگ شد دیگه او که کو اصلا خبری نیست که بخوان غذا بدن شما پدر پدرجان سینی رو ببندین وقتش که شد بازش. رو. نمیتونم دکتر به من گفته اصلا نباز هیجان زده بشی کاراتو باش رو آرامش انجام بدی حجب بسوتی ها باشه بابا راحت باش شما. اگه ما شانس داشتیم که اینجا نبودیم، منان داشتیم می‌رفتیم اروپا عيد. هلمیرجون هم داره میاد. عزیزم، چی شده؟ رفتید سریمون سدیگه برداری که با هجاب برگشتی که؟ یه ببینم. حالا اصن خوب نیست. عزیزم، چی شده؟ تو دستشویی اتفاقی افتاده؟ کسی مزاحمت شده؟ من 100 بار بهت گفتم بریم اروپا عيد. من میخوام برم یه جایی که ایرانی نباشه اصلا. عزیزم من دارم عصبونی میشم و زودتر رو من بگو کی ازیتت کرده برم حقشو بذارم کف دستش نمیخوا دست بکشی شما حالا منم میخوره از این زندگی المی من با من حرف بزن خواهش میکنم بابا رفتم تو دستشوهی این زنه حزب اومده چیزی نمونده بود بخورد نه کدوم کوچی تو آسمونم اینو بل نمی کنن ما رو بهش گفتم که بزور سریمو دوباره سرم کرد گفت برش داری و من طرفی غلط کرد با هفت جد دو آبادش کدومه نشونش بده برم لهش کنم بشین بابا بشین اینو معلوم نیست به کجا فصلن برگردیم میان سر پس پسو برم به این خانم مهمانداره بگم خیلی خ... یعنی چیز خیلی مهربونه لازم نکرد گفتم حالا فقط یه قول باید به من بدی جون هرچی علمی میرا جونم میگه تو جون بخو. بگو به جون علمی به جون علمی میشه اومای دو کار رو بپوشم تو پاکیا؟ عزیزم آخه چیزه؟ من من مشکلی ندارم ولی ببین. خُلا دیگر چی میگم بگی چهش؟ خب آخه ببین حداقل اون یکی رو بپوش که چیز پارچش شی خود بیشتره. یعنی او سرعتیه؟ آره با خوشگذر باشه ببین سینا اگر یارو فاتیکoman تو هتل ما باشه من برمیگردم از اصلاً. اول اینکه اینا اصلا نمیام تو هتل های بعدم بیاد با کلم تو سرعتش چی فکر درباره من؟ آفره. الان احساس کردم یه مرد قوی پشتم من هم پشتتم هم سایه بالای سرتم دیگه پرو نشد دیگه من مهمان دارم شما اصلا حرف نمیزنی یا مفهومه باشه بابا هر چی تو بگی من چون خیلی مهربونیت ازش موشم بشور بشور نوا دو پنج بوزه، فش خوندن غاتی هم اروناش دورم دو میشن ها بالوماس فوسه. همی کنم بردنو گیار. نوا دو پنج نوا دو پنج بوزه. من غاز دماتون هنره دورم دو میشن ها بالوماس فوسه. همی کنم بردنو گیار. دنیا باریسکو بکنه. ما بی تا به کام همه دسته پرم و با ماشتر میان hey, هم اضافه میشن انگار اینستاگرامه <تصفيق> منم یه جانی بلفتتر هم و خانواده واکر که ردلیبللم. چش و خون وه چ کهرم اگه میخوای مثل من چی با هیز بت برم ما قفلیم اینجا پر توتی موتی خانوم از بس کهرس انگا توتی موتی آرمان پیور یه گوش مل و روتین رو بیت اینه همیشه هم همیشم که دستش لوتی قوطی همه خن و پایین ولی شب نرو داریم بعد ناابکه به ترکونی مغذر با فیربیکر با موزیکا همه گای گوی جمر رو کهگرشم بر ضایی5 95 بازه تشا خونقدر که همه رو دورم دفعه دو میشن هبل و مصفاسم بیرخصم میکنم کمر و گرم نه و پنجه نوید و پنج بازم اینقدرم اتا نویم و نشتاسم دورم دفعه دو میشن هبل و مصفاسم بیرخصم میکنم بردن و گرم گل چک تو تغییراته عندما تعديلات میزنی خونه بیرون یه حال غریباته می‌بینی که رباتی شده تا حکیلات زمنسون به جا حیات که میاد تو ویلا بعد دمیدم که واسه ما میاد نوری یا لرز چیزایی می‌بینی که انگا کری توریکو چاک مدو میگم پول نیست ولی تو بوتیکا سفخیات دافه اومده با عمو دست داده بعد از اینکه کلی قین هر و تفت داده بهش میگم خلی میگه چرا میگم چون که الان 95 تو سینا تنو افتاده امسا خواسن چش کبود نمونن ولی می‌بینی جفتی هن و همونن دنیا بهمون به کاره داشتی هن پل و پلومندمون و اصل هم انه شون دون هر هرجا برم پکا ولن اون بازم رااضرمطورم همه چشااق قمثل انگار اینا و پایهرم مثلا در کل بس هست اشب به کل پکم چند پکهم کلحفری هست حیفش هستم از چوسخص هست دو دو تو دو دنیا مینه این و جناس تو شراین ای تو پاریس و به گاز زندگی اینه بنز ماست پس مثل من به جایینک وایسی تو بگازم 95 95 بازم چشا اینقدر که همه رو نشتاسم دورم دفاق میشه هبل و مصفاسم همی hey کنم بگن و گرم نوید و پنجه نوید و پنج باتم اینقدر درمت و نوید نشتاسم دورم دفاق میشه هبل و مصفاسم میره سمی کنم بگن و گرم تهران پنج دارم <تص> ای دمو از نو گفتین که سال تحویل رو سر کارن اول رفتیم سراغ پزشک ها فرستاد رو اما خب مشاغل دیگه ای هم هستن که این موقع ممکنن سر کار باشن مثلا دزد داش <تصفيق> آره اونم میشه یعنی الان بریم سراغ دزد داش آره دیگه البته دروست دزدی خیلی کار زشت و بدیه هیچکس هم نباید دست رنج دیگه رو بدزده اما بالاخره دزدی هم یه شغل دیگه اتفاقا این ایام تعطیل عید و این حرفا واسه دزدا دو طرفه عیده هم عید نوروزی هم عید فراوانی خونه خالی دقیقا دقیقا پس ما همینجا به دوزدان عزیزی که دارن صدای ما رو به خصوص سر کار میشنون ایدو تبریک میگیم ولی خب ازشون میخوان که دنبال یه شغل آبرومند و شریف باشن بله با تشکر از شما دوزدگیران بسید بسید بسید. مطمئنی دوزگیری از کار افتاده آره بابا بعد 35 سالانات با من شنگ داری تو یه سیفه بگو سیفه دیه باشه را دیو را روشنش کن صدا که هم که این وقت سال تحویل نگذاره باشه باشه باشه, باشه. باشه. باشه. خاله پولم اسلم نشه اونجا. ول بیاری داداش به خاطر بابو. اینا منتظرن اون چی؟ دیانا سلطانی اینا دارن شرط تحویل میدن که ببین من میرم ببینم آلبوم هنادگیاشون کجاست؟ آلبوم خانوادتی چیه خره؟ سوچم فرش و فرشا رو من برم سراغ طالمنه. ببین من واش ببینم دختر خانوادت چه شکیه باشه سالن اینفو. هی یعنی من خودم خودمو دار بزنم از دستت تا کم به خدا بابا چون صد بار بهت گفتم این کار زشته بده نمی کنه این کارا دیگه باشه بابا باشه ایوه با اینجا ببین یه چند تا قابع اکس خانوادگی هست بزایینا رو ببینم شاید بیخیان آلبام شد با باشه بس من این کشه رو می گردم ببینم چی دارم اخ این نوره چراکوبره من دازم این طابلوه چرا؟ با؟ ای با اینجا پادگان یا این خونه یک دو سه چار باید سی شکر باید یا این یا تا پسر دارن چه یا خدای کلا رو ببین یه مدر پدر پیرن با اونم نرخون اه نه خواستیم مامو وادو بادو بادم بگیه کامان کاسیم چه چه چه باید سو نمیگیم؟ جون سال تحویل شد باد و بغل داشتک داری بگی کومنم از خریم بده مچخش جنگر رو داشت نه داشت نه سال تحویل سر کار بودی انشالله تا آخر سال همهش سر کار باشه خورمونت بره همی شد همهش بری خونه وزیر و دفتر و وکیل خالی کنی بره دیگه انشالله با شما دیگه ست خونه و این خونه خوالله چیچه تنداشت بیجن بره بره ای تو مدای دنیا عشق لحظه ی تحبیل بحار پرسط آغاز دیگه از دیگه میشه تو این ثانیه ها هر لحظه خوشبختی رو دید وقتی خدا کنار ماس میشه به آرزو رسید فصل بخور یعنی لبخنده خدا با ویژه برنامه نوروزی سال 1395 از اینکه رادیو فردا رو را انتخاب کردید ممنونیم امروز راجب مشاغل هفت زدیم از اونایی که ی سال تحویل سر کارند آقاین پلیس هم ایام نوروز حسابی درگیرند کلن این شغل از اوناست که وقتی همه دنبال خوشحالی و فسق و فجور و اینا یا باید آماده باش باشند و بیشتر برن سر کار یا هم که اصلا کلاً ضد حال باشن تو حال دیگران راید سفید راید سفید توقف نکن آقا جون برو ببینم بگم بگم توقف نکن دیگه نمیشنوم چی میگی به حرکتت ادامه بده سمند نقرهای زمند نقرهای راهنما میدونی چیه او دست بقل فرمونت راهنماست نه او فلاشره شره رانما رو دارم میگم آها دست آفرین هر موقع میخوای بری راست یا هر موقع میخوای بری چپ بعد اونو بزنی آفرین پسر خوب مگان مشکی چرا اونجا باش تو مگه مسافر کشی جلو خانم زدی برو ببینم تا نیومدم ماشین تا بخابونم اه برو آقا داری سوار میشی شما به نظرم تاکسی نیست خانم به من مربوط نیست مگان توقف نکن برو عجب وضیه ها نیسان آبی نیسان آبی شما چرا گاز میدی از ماشین دود و میاد بیرون ماین ما فنی رفتی بزن کنار ماین ما فنی تو باید بیار ببینم با دو بله شش شده؟ تا تاویل جون من دیویز شش نو رایی بلنکو صدای راڈیوتا بلنکو رانندگان و اوبرین عزیز سال نوتون مبارک باشه جنابسروان شما سال خوبی داشته باشه قبض جریمهاتون پر باشه انشالله اینشالله خدا بخواد هر دومون سال جدید منتقه زیم کشترشان قربون شما بره نیسانه آبی پر آقا که سال نوت مبارک باشه دفعه بدود و کرمز بدیم میخوابونم ماشین تو ها آقا رننده نیستان آبی چرا حرکات موزوم میکنی وسط خیابون نکن آقا اه زشته جریمت میکنم آ اه او حرکت خیلی زننده بود خدای زننده بود دیگه آقا نکن رایت، خانم از شما بایده اه توقاف نکن رخش وسط خیابون نکن نچرخون اه نالارزون ای بابا بایسی منم اومدن آه آه آه گل ناری هی چف مسی چف خو ماری گل ناری مسی چف خو ماری شابن تا عزت چف مسی چف لو شادم بو گل ناری موشکا مگش بیم چف مسی چف گل ناری هی گل ناری هی نهایی گل ناری دی نو سه خزی ماری چف چف خو گل ناری هی گل ناری هی گل ناری چف چاب خواماری لودشادم بوشینه هیلهاییه گل ناری بوش قامه گجینم چاب مستی چاب خواماری گل ناری هی گل ناری هیلهاییه گل ناری دیروزه خزی ماری چاب مستی چاب خواماری گل ناری هی گل ناری هیلهاییه دیرانی دیرانی هی دیرانی جندو باجان حیرانی دیلن لبندم ایا وارخوش کسی رانی دیلن لبندم ایا وارخوش کسی رانی کل ناره این کل ناره این یماری چب مسی چب The last thing من شووره دادم او کی زاخار تکبری شروع کردی دوباره وا این دوخیه مهمون داره دیگه الان داشمو قزم از میارم برات ای تو روحت خیلیام خوبه خند و بالاش لامصب چی شغل گره اپو کلی نازو گره شو بعدش بعد هم گفت شوهر بیخیال مگه حلقه دستش بوده منم بابا بعدم حلقه مگه ملکه این روزو تلیپ دختر اینا همش حلقه دستش خیلی خریام با. بابا یارو مهمون داره دیگه جمع داشته باشه زره فکر میکنم الان آره من خیلی داوونه بابا آره نمیدونم که تو 17 سخ دار دیدی ببین من صد بار گفتم خودم نمیخوام دوست دختر داشته باشم آره آره بابا قربون دستت به گوش نمی رسسه میگه پول ببین اونجا از این زای وازیا در نیاریام من نیستم ها اصلا میدونی بعد چیکار کنیم که ما شما اومدیم داری گنج زدیم به این امسالمون رفت خب چی حالا دوستاش کلا حواش به ما دوخی موخی بود تو رام ور نمی کردن وسطشون آخ آخ, آخ گفتی جهالی کردن دوخی موخیا ای بابا کاش نصف این اعتماد بنفسی که داری عقلم داشت بیخیال بابا اومدیم سفر نوروزی بزنیم ماس کاراممان نکنیم ریلاکسی یعنی ها تو نظر روحی رسما فت تا هاد سال ما رو به ما کیونیم خارج اگه من نباشم که همین تو فرودگاه ببین انقدر ضای و بیجنبه که برت می گردونم بد به با. یا کل اک می گیرن میکنن تو حافتونی او بابا بلی برم غذاور میرم یه ج اون عوض کنی من سر بشن رسبت بشه میخوا این سال میمون یه دو دختر جدید آاتم مهممان دار تول کنم خیلی طول میشهه. بگی بشیم بابا این بردیگه این زایه به خدا بگیم بگیم بگیم سرت کن زایه گذاری سالم شکرد بشیم یاد بگی یاد بگی سلام علیکم خوبین شما پارسال سال دوست امسال آشنا دوباره که ما رسیدیم به سلام زرش پلو با مرغ یا باقالی پلو با گوش آخه شما ببین خانم کدوم درست حساب شما باید انتخاب کنید دیگه. آلا من سرش پلو با گوش بخوام میشه؟ نخیر متاسفانه. باقالی پلو با مرغ چی؟ نه متاسفانه اونم نمیشه. ببخشید خانم یه باقالی پلو با گوش میشه با من بدید بله بله خدمت شما. شما می ندارید؟ چرا علی علی چه عجله ایه؟ خانم گوشتمونه ها با داد بابای بابا سرباتون میگیرم قزو رو اون پاش همکارم آقای آقابی سر مهماندار پرواز تقدیم خدمتتون هستن <تصفيق> آه. من اگه جایی تو بودم همین الان در هواپیما رو باز میکردم می پایین. برو ول کن چه قزوو شده دیگه گوشتمه بیا غذا تو هم بخوری. جونت اگه دستت بیاد این طرف این چنگالو فرو میکنن تو چشه. آخه اخریو میگم گوشتمه. <تصفح> برام پاش از آقا عقابی بگی قزو دیگه. به به چقد هم که خوشمزه. سر ما کورتو بخوری تو توی شیکمه. ای من تا آخر این دختره رو نکردم. ببین. چونم مراسم نوروز به غیر از ایران توی کشورهای افغانستان و تاجیکستان هم برگزار میشه که البته توی هر منطقهی رسم و رسوم خاص خودشونو دارن توی تاجیکستان یه غذای مخصوص نروزی دارن که بهش میگن باج باج؟ باج خوری که خوبه اسکنویا <تصفيق> باج اونا با باج ما فرق داره خوردنش هم خیلی خوبه اتفاقا. جدی چه غذایی هست این باج همین کله پاچه خودمون نه با گندم می‌پزنه روز ایت هم با همدیگه دیگه و میخورن چه باحال پس یه چیزی تو مایهای حلیم خودمونه آره یه چیزایی مثل اما حلیمی که با کله پاچه درست شده به به به چی میشه به نظر من حتما باید یه بار امتحانش بماله حتما اتفاقا مرسا یه هم با همکارای بخش تاجیک زده بشنویم با هم خیلی خب ایتو هم به همه تاجیکی هایی که صدای ما رو میشنوند تب بکنید در سفره اصلا دسرخون در گوشت نمیمانند هر چیزی که مثلا خون ریخته باشد هر چیزی که کشته شده بیو قتل شده باشد نه در اونجا فقط محصولاتی گذاشته میشوند که مثلا شیر و آرد از شیر و آرد روغن تیار شده باشد و اصلا بگیم که در کویستان بدخشان تقفیمه است که از روی اوزبهای بدن انسان ترتیب می شود یعنی از همون انگشت پای خیرسر می شود تا دل می گود یعنی آوان از هم وقت مثلا انگشت های پایان است، وقت نرمی بدن است، همی تا که رسید آوان نوروز میاد اصلا بگیریم نوروز را همچون جشن فقط آدم ها نمیدانند یعنی در مجموع هم حیوانات هم آدمان این یعنی یک نوروز جشن همه هست تقویمشون است که انسان را به طبیعت میپهندند و اگر تقویم به نرمی پای برسد و این معنی که روزهای گرم میآید برکس چون حساب سختی استخان برسد معنی سردی را دارد وقتی حساب بوده ها رسید بارانگریست و آمدنی بهمن و چون بدل رسید نوروس برا میرسد و از در اون بدخشان عالمان هستن که اونا میگن چی و اونها خود جای خاص خود را دارند و از آمدنی این جشن به مردم خبر می‌دهند و طوری که همکار ما گفت و اعتقاد مردم بدخشان زمانی و ورچودانی سالینو یعنی نوروز زمین میلرزد پیرو بر همین آنها بالای آینه توخم درونی پیاله آب علف نوروزی میگذارند توخم بالای آینه و علف درونی پیاله آب چون به حرکت آمد تو این نشانها میفرمان که زمین خود درختان داد زمین و سال نو از همان از همان دقیقه شروع شد نوروز چند کم‌شی دی ما Some on شنوندگان عزیز هم اکنون در خدمت یکی از استادان بزرگ ادبیات فارسی یعنی پروفسور میررک جلالی دین جلالی هستیم. تا در رابطه با اصطلاحات مربوطه به عید و نقش ادبیات فارسی در اون ما را یاری کنند فرزندم در همین آغازگاه سخن اجازت بده تا من گزیدگاه کلام تو را در باب باجه پروفسور اصلاح نمایم خواهش هم. میکنم استاد بفرمایید در ادب فارسی فرزند ما گنجایشگاه گان بالایی داریم برای جایگزینی این کلمه غریب پروفسور چی هست استاد جانم با مشتاقیم بشناریمش. بهتر است فرزندم به جای این کلمه که برفزونی دانش فرد دلالت دارد بگوییم افزون دانشمند بله یعنی به جای پروفسور بگیم چی بود آستاد؟ افزون دانشمند فرزندم آها آه یعنی من باید به جای پروفسور بگم افزون دانشمند میرکز دازدین جلالی دارسته آری فرزندم بله بله, بله باشه اما استاد شما برای اصطلاحات و تبریک های ایام اید چه پیشنهاد فارسی دارید برای شنوندگان ما مثلا به جای عید مبارک چی بگن که خیلی فارسی باشه ببین فرزندم واجه عید اصاساً واجه است عربی و ما شوربختانه در فارسی اصیل هماوردی برای آن نداریم بله. اما این جانب برای آن هماوردی ساختم هم بس شیباب و زید بله بفرمایید دوستاد شنوندگان عزیز الان استاد میخوان جایگزین فارسی کلمه اید رو که ساخت خودشون هم هست به ما هدیه بدن بفرمایی دوستاد بله بهتر است که به جای اید بگوییم نو سال جشن نو سال جشن آرید. چه جالب بعد استاد ایدی رو اون موقع یعنی باید بگیم چی نو سال جشنی؟ گونه هم میشه بعد آرینی کوست آرین خب استاد عید شما مبارک چی میشه؟ آن را هم باید گو خوشانو سال جشن شما به بح بح بح خوشانو سال جشن شما استاد خوشا نو خوشانو سال جشن شما هم. استاد فقط فکر کنم وقتی ما این محفلی میشیم و یهو بگیم خوشانو سال جشن شما مردم فکر کنم داریم دستشون میدازیم هرگز مباد مباد هرگز زبان پار سیراب بایستگی پاس باید داشتندی و این تنها راه پاس داشته آن است حتی اگر مخاطب گاهی شما بیندی شاید که شما را دست انداز بله. استاد من میخوام از حضور شما یه سو استفاده بکنم و آره. شیری رو که به مناسبت اید آره. یعنی چی بود نه سال جشن آره. بله آره. سرودم رو خدمتون بخونم شما نظر بدید اگه ممکنه فرزندم ببینم چنین بله استاد با اجازه شما سرودم که یک عالم عطر بید تقدیم توباد تبریک بسی شدید تقدیم توباد تنها دل و قلوه ایست دارای ما این هم دم صبح اید تقدیم تو با همین بود آستاد اح اح اح فرزندم تلاشنده بودن تو را نیک میپندارم اما چلامت پر بود از واجگانی که پارسی نبودند و ما در زبانگان من برای آنها همهوردانی داریم به چنیکویی خب استاد من مشتاقم که شعر بنده و اصلاح بفرمایید شما ببینم کاغذت را بفرمایید بله, بله گفتید یک آلم عطربید تقدیم تو بعد اینجا میتوانی بگویی بوی خوشبید در اندرون پذیرشگاه دل تو جاینده باد استاد آخه کسی نمی فهمه اینا. این مشکل تو نیست آنها پارسینه می دانند ما که می دانیم خب مثل بعدی رو بفرمایید استاد تبریک بسی شدید تقدیم تو باد. این را می شود سرود بله. بسیار شاد باشه کوبنده در اندرون پذیرشگاه دل تو جاینده باد دوستاد. در ادامه اید تنها دل و غلوه است دارای ماین ما را می گفت تنها اندرون گوزپندی دارم بابا. و بس اندرون گوزپند و اش... ها. دل و قلور رو میفرمایید باشه اه... میخوایید دیگه ادامه ندیم استاد وقت شما رو هم نگیرم اما در بند آخر هم گفتید این هم دم صبح اید تقدیم توبات که می شود. آجا. این دقت بفرمایید این نیز در دم دم صبح گاه ابتدا سراغ شفق گاهان نو سال جشن بله. در اندرون پذیرش گاه دل تو جاینده باد بله استاد این که تبدیل شد به نس که آری چون این است و این امر است باشه دیگه وقتمون تمومه شنوندگان عزیز در خدمت استاد پروفسور یعنی ببخشید چی بود استاد اینجا اپ بله استاد داره. افزون دانشمند میرکززاز دین جلالی بودیم و آخرش اینجوری شد دیگه استاد خداحافظی نمی فرمایید با شنوندگان؟ آره می نمایم ای نیوش کنندگان جان روزگار خوش و همه نیکی ها و خوبی ها در پسا پشت و پسا پیش پناه شماییگان رهنمون با بله، فکر کنم تبریک گفتن آره. استاد من هم تبریک میگم باز هم و امیدوارم سال خوبی رو در, در پیش... پیشنگاه خود داشته باشید آره. خداحافظ چقدر آره. سخت اینجوری حفظدن استاد آری سختی حفظون است و زبان را چندگاه نباید سهل پنداشت کرزندم از اونجایی که این برنامه زنده نبود اتفاقات بامزه هم موقع ضبط برنامه کم نیفتاد یه بخشایش رو با هم بشترین اسم خورچی؟ سید س... سید خانوم <تصح> آقه هست خدا صدای چیز دیگه در نیوانیم يعني... نکنین دست جایی به میز، سیم، کاغه از اینا نظر شمبلیا، دنبلیا، راندالیا، سنگولیندیا، شمبلیندیا، سنگالاندیا نواده، شلپا آه آه آه <تصفح> یه چیزی شبیه به یه جایی باشه در خدمتی شما در حال حاضر در ارتفاع خیلی زیادی در حال پرواز هستیم کمتر از دو ساعت این چرا شیرازی ش... شی... شی... شی... شی... شی... شی... شی... شی... شد چرا؟ نظری نداری دوستان بیننده بچه نونده مگار مشکی اه دوباره جیتون اوکی بوی هنجرم پاره همه شما هم دست دوباره بریم دستم باقی کنه همه گم کردم ای کم بود دیگه چرا آقای اینجا سر تقریم تو بعد تنها دو خوبه بگی افتضا بکتر صبحانی اون آفاندیسون دگه داری بیقه من گرمیشه کافی اینجا بندازم من در تو بیاره نمیشه پنس لطفا تو از من نخواین بگم پوست پستم ببخشید من بک نت از مسافران میگیرم تعظیم میکنی بله بله بله الان تو آخر میگه وار لحظات عجیبیه چه طبیعت دوباره متولد میشه خیلی دیگه چی لوخ برنامه نروزی روزی رادیو فردا تموم شد اما سال 1395 تازه شروع شد امیدوارم شادیاتون تازه شروع بشه سال جدید براتون پر از سلامتی و دلخوشی باشه کلا حال کنید امسال از اینکه با ما بودیم نه نه نه از اینکه رادیو فردا رو را انتخاب کردین شاد باشید و مانا بی دست درآریم و دعایی بکنیم با شوی دست برآریم و دعایی بکنیم غم هجران تو چاره جان دی بکنیم غم هجران تو چاره جان دی بکنیم دست درفیقال تو تا تمیبش بسراری و دعایی بکنید تا تمیبش بسراری و دعایی بکنید ما شدید است براری و دعایی بکنید ما شدید است براری و دعایی بکنید غم هجران تو را چاره جامی بکنید غم هجران تو را چاره جامی بکنید شارید خدا را، بازن شارید خدا را که صفایی بکنم بازن شارید خدا بازن شارید خدا را که صفایی بکنم عاشقی هست براری و دعایی بکنید عاشقی هست براری و دعایی بکنید غم هجران تو را چاره چامی بکنید غم هجران تو را چاره چامی بکنید دلم از پرده شد حافظ وز خوشگوی کجاست دلم از پرده شد حافظ وز کجاست تا به قول او غزلش ساز و نوایی بکن باش و نوایی بکنی باش امید است و دعایی بکن باش امید است و دعایی بکن غم هجران تو چاره چایی بکن غم هجران تو تعویض به پراری و دعایی بکنید تعویض به پراری و دعایی بکنید باشوید از براری و دعایی بکنید باشوید از براری و دعایی بکنید غم هجران تو را چاره چا می‌بکنید غم هجران تو را چاره چا می‌بکنید باشوید از براری و دعایی بکنید باشوید از براری